داستان بختیار اسمت دوم خلاصه فردا صبح زود شروع به پخت و پس کردن و به نظافت مشغول شدن تا از شاه به خوبی بتونن پذیره کنند میزبانان در انتظار مهمان خودشون با عجله مشغول تهیه خوراک بودند. شاه هم تلاش میکرد که قبل از ساعت تعیین شده به مهمونی بیاد و سرزده داخل خونه اونها بشه. همونطور که وزیر با تدبیر گفته بود، اتفاق افتاد. شاه یک ساعت قبل از ظهر رسید و بدون اینکه خبر بده وارد خونه شد. زرنگار خانم رو دید. زرنگار خانم به شاه نگاه کرد ولی حرفی نزد. فقط قدری ابروی خودش رو بالا برد. نگاه اون مثل تیر دلسوزی به قلب شاه کارگر شد. شاه بیهوش شد و بر زمین افتاد. وزیر به طرف شاه دوید و اون رو داد و به گوشش گفت. ال حذرت به خودتون بیاین چی شده؟ بالاخره شاه رو بلند کردند و به ترتیبی اون رو به هوش آوردن و به اتاق پذیرایی بردن. در این حین سفره رو پهن کردند. شاه با زحمت زیاد مقداری غذا خورد و با میزبان خداحافظی کرد با یک دست قلب خودش رو گرفته بود و با دست دیگه به وزیر تکیه داد و براه افتاد و به قصر که رسید یک سر روی تخت خوابید و به وزیر گفت وزیر با تو مشورت میکنم چی کار باید کرد؟ این دختر زیبا باید زن من بشه و الا قلب من از کار میست وزیر در جوابش گفت، علا حضرتو، به آسونی نمیشه. نمیشه زن این شخص رو از دستش گرفت. مردم چی میگن؟ تو یک شاه عادلی، لازمه اول بختیار رو از بین ببری. بدون علتم نمیشه اون رو کشت. تمام ملت ناراضی میشن. به همین خاطر من اینطور طور صلاح میدونم که بختیار رو احضار کنی و بهش امر کنی از میواهای بهشت برای تو حاضر کنه. اون شاید نتونه میوهای بهشت رو حاضر کنه اصلا نمیتونه اون وقت به این بهانه سر اون رو از بدنش جدا کنه و زن اون رو صاحب شو شاه از مصلحت وزیر خوشش اومد و فوراً امر کرد بختیار رو حاضر کنن. بختیار اومد و شاه به اون اینطور گفت که دوست عزیزم گوش کن تو میبینی که من مریض شدم پزشکا دستور دادند که من از میوه‌های بهشت بخورم لطفا برای من قدری سیب به بهشتی حاضر کن بختیار در جواب گفت شاه زنده باد اگر خدمتی از دستم بر بیاد موجب افتخار منه، اما من در این شهر شخصی غریبم و نمیدانم درخت‌های بهشت در کجا پرورش پیدا می کنم. به قلام خودت امر کن اونها بهتر میتونن میوه های شفا رو به دست بیارن شاه قذبناک شد و گفت زیاد حرف نزن چهل روز به تو مهلت میدم اگر سیب های بهشت رو حاضر نکنی امر میدم که سر از بدن جدا کنن بختیار با غم و قصه به خونه خودش برگشت زن پرسید بختیار چی شد؟ چرا بازم ناراحتی؟ بختیار با حالت غضبناک گفت: ای کاش مار شاه رو بگزه. میخواد که من میوه بهشت برای اون تیه کنم. معلوم میشه که اون خیال داره من رو نابود کنه. زرنگار خانم گفت: ناراحت نشو. من به تو کمک میکنم. این انگشتن من رو بگیر و به جنوب روانه شد. سه شبانه روز میری تا بالاخره به اقلیم دیوها میرسی دیوا به تو حمله میکنن اما تو نترس این انگشتر رو به اونها نشون بده اون وقت جرأت نمیکنن به تو نزدیک بشن هرچی که میل تو باشه انجام میدن این انگشتر ساده و بیخودی نیست مهر سلطان دیوها روی اون نقش بسته با این حرفا انگشتر خودش رو بیرون آورد و به بختیار داد بختیار برای جستجو و یافتن میوه‌های بهشتی براه افتاد. سه شبانه روز رفت. صبح روز چهار روم به اقلیم دیوها رسید. همین که قدم به اقلیم و سرزمین اونها گذاشت دیوها به اون حمله کردن و کم مونده بود که اون رو پاره پاره کنند با زحمت زیاد انگشتر رو بیرون آورد دیوها وقتی اون انگشتر را دیدند در مقابل بختیار سر تعظیم فرود آوردن و گفتند هرچی میخوای امر کن تو آقایی ما هستی و ما فرمانبر بختیار گفت امر میکنم برای من از سیبهای بهش تهیه کنی. یک از دیو ها گفت بسیار خوب اما برای این کار ما باید به اقلیم پریان مسافرت کنیم روی دوش من بشین تا تو, تو رو به اونجا ببرم بختیار روی های دیو نشست و به آسمون پرواز کرد بعد از سه شبانه روز که بالای ابر ها رفتند در ساحل رودخونه ای پای درخت چنار صد ساله‌ای روی زمین فرود آمدند دیو گفت پشت این درخت چنار مخفی رو و انتظار بکش. به زودی پریهای قشنگی که دختران پادشاه این سرزمینند به شکل کبوتر در میان و به این محل میان. بعد به دختر تبدیل میشن و توی این رودخونه شنا میکنن. فرصت رو از دست نده لباس یکی از اونها رو مخفی کن و تا موقعی که خواهش تو را انجام ندن لباس رو به اونها نده. وقتی که سیبه بهشت رو به دست آوردی انگشتر را از یک انگشت به انگشت دیگت بکن من فوراً حاضر میشم دیو این رو گفت و فوراً از نظر غیب شد بختیار هم پشت درخت پنهون شد و منتظر پریهای زیبا شد زیاد انتظار نکشیده بود که یک دفعه دید سه کبوتر به رودخونه نزدیک شدن و کنار رودخونه پایین اومدن اونا داشتن با هم صحبت میکردند. یکی از کبوترها گفت لباسها رو بکنیم و به شنا مشغول بشیم اون یکی گفت من خواب بدی دیدم امروز شنا نکنیم. کبوتر سومی گفت ای خواهر ما از راه دور و دراز بین محل پرواز کردیم میشه شنا نکرده برگردیم بالاخره خواهرهای بزرگ خواهر کوچیک رو راضی کردن بعد مودل به دختر شدند لباسهاشون رو در آوردن و توی آب رفتن در اون موقع بختیار از پشت درخت چنار بیرون اومد و لباسی رو که نزدیکتر بود برداشت. دوباره پشت درخت مخفی شد. خواهرا پس از شستشو و شنا بیرون اومدن. دختر بزرگ لباسهای خود رو پوشید و مجددا مبدل به کبوتر شد. دختر وسطی هم لباس لباسهاش رو پوشید و اون هم تبدیل به یک کبوتر زیبا شد. اما دختر کوچیک که خواب بدی دیده بود لباسهای خودش رو پیدا نکرد گشتن و گشتن و لباسها رو پیدا نکردند انگار لباسها آب شده بود و به زمین رفته بود اون وقت دختر بزرگ به صدای بلند طوری که در سرزمین جنوب و شمال و شرق و قرب شنیده بشه گفت ای کسی که لباس خواهر کوچک ما رو دزدیدی جواب بده تو رو قسم میدیم به کسی که تو به اون ایمان داری ظاهر شو و اون چیزی رو که برداشتی به ما پس بده قسم یاد می کنم به تاج سلیمون که هرچی به خواهی مزایقه نمی کنم و هرچی که امر کنی انجام میدم وقتی این حرف ها رو شنید و از پشت درخت بیرون اومد. گفت حالا که این طوره از سیبهای بهشت برای من تهیه کنین اون وقت لباس خواهر شما رو بهتون میدم در این حین یکی از کبوترها به پرواز در و به آسمون رو. ساعت نگزش که در منقار خودش یک شاخه ی از سیب به بهشتی آورد. وقتیار سیبها رو گرفت. لباس خواهر اونها رو داد. بعد انگشتر رو از یک انگشتش درآورد و به انگشت دیگش کرد. فوری دیو پیش اون حاضر شد و گفت بشین رو شونه من رو محکم بگیر. دوباره دیو به آسمون بلند شد و بالای ابرها به پرواز در پریدن و پریدن تا در محلی که از اونجا به آسمون رفته بودن دوباره فرود اومدن. در اینجا بختیار با دیو خداحافظی کرد و راه خودش رو پیش گرفت. سه شبانه روز رفت تا بالاخره سیاهی شهر خودش رو دید. پیش از اون که به منزل خودش بره پیش شاه رفت و گفت پادشاه ها خوش باش از بهشت برای تو. شاه به بختیار نگاه کرد و تعجب کرد ولی گفت خیلی از تو ممنونم. به بختیار، چقدر شادم سیب بهشتی برای من آوردی. این حرفها رو به زبون روند و توی فکرش چیز دیگه ای بود. شاه پیش خودش می گفت خاک بر سر این بختیار ای کاش به زمین فرو می سیب بهشت رو آخر آورد. کاشون به کلی محو و نابود می شود. ولی چون چاره نداشت انعامی به بختیار داد و به سلامت اون رو به خونه روانه کرد. زن بختیار که می دونیم دختر جوون و قشنگی بود در انتظار بختیار به سر می برد که مهمونی مفصلی به راه بندازه. حالا بختیار رو با زن قشنگش می زاریم و مقداری از شاه صحبت تمام روز رو شاه قدم میزد و نمیتونست به خودش بیاد و بالاخره وزیر خودش رو خواست و بهش گفت ای وزیر مصلحت چیه چی کار باید کرد بختیار رو کجا بفرستیم که برنگرده وزیر در جواب گفت شاهنشاه به سلامت باشه یک جایی هست که اون نمیتونه از اونجا دوباره برگرده امر کن که اون از گلستان ارم گلی برای تو بیاره مگر گل گلستان ارم رو پیدا میکنه ابدا تا حالا راه اون گلستان رو پیدا نکرده شاه گفت آفرین آفرین فکر خوبی کردی به هر حقی بود شب رو گذروند و صبح عقب بختیار فرستاد و گفت ای بختیار تو تمام مملکت من کسی مثل تو وجود نداره کسی غیر از تو نمیتونست برای مصیبه بهشت تکیه کنه این دفعه هم از دوستی خودت مزایقه نکن و گلی از گلستان ارم بر من بیار چهل روز به تو مهلت میدم اگر حاضر نکنی امر میکنم که سر از بدن جدا کنم بختیار این حرفها ها رو شنید و بدون اینکه حرفی بزنه تعظیم کرد و برگشت زرنگار خانم دید که بختیار از نزد شاه دوباره غمگین برگشته به این جهت گفت بختیار چرا غمگینی مگه نمی‌دونی اگه تو غمگین باشی منم شاد نیستم بختیار گفت چطور من خوشحال باشم در صورتی که چهل روز بیشتر از عمرم باقی نمونده شاه امر کرده که گلی از گلستان ارم براش حاضر کنم چطور میتونم این گل رو تهیه کنم اصلا این باغ کجاست اصلا چنین باغی وجود داره زرنگ خانم با خنده گفت برای همین اینقدر متفکر و غمگینی بختیار با تعجب گفت خب مگه این بدبختی نیست؟ زرنگار خانون گفت بختیار خوب به حرف من گوش کن من یک ورد و دعای معجز آسایی میخونم که هر کس اون رو بدونه راه گلستان ارم برای اون باز میشه این دعا رو به تو یاد میدم چشمهای خودش رو میبندی و این دعا رو میخونی همین که چشم خودت رو باز کردی؟ خودت رو در باغ ارم میبینی. تو اون باقه دخترانی رو میبینی که کسی نمیتونه تشخیص بده کدوم یکی از اون یکی بهتره. اما یکی از اونها مثل آفتاب بین ستاره هاست. از زیبایی قشنگی خودش سایرین رو تیره و تار میکنه. اسم اون گل قهقه خانومه. زیرا موقعی که میخنده از لبهاش گل خندون میباره. فوراً یکی از اون گلها رو برمیداری و چشمهات رو می‌بندی. بعد دوباره اون ورز رو می‌خونی و مجددا به خونه برمیگردی. اما یادت باشه که نباید به اون دختر دوباره نگاه کنی و الا ممکنه برات بدبختی پیش بیاد. بعد از اون زرنگار خانم اون دعا رو براش خوند و بختیار به افتاد. همین که از دروازه شهر عبور کرد، چشپای خودش رو بست و دعای معجزه نما رو خوند. تا آخرین حرف رو گفت، یک نیروی غیبی اون رو گرفت و به هوا برد. بختیار از تعجب چشمای خودش رو باز کرد و در یک آن به زمین فرود اومد. به اطراف نگاه کرد و مبهوت شد. در عمر خودش چنان مکان زیبایی رو ندیده بود. همه جا گلها رویده بودن و بلبلها چهچهه می و فوارها تا آسمون بلند میشد و فرود می اومد. در بین اون گلها و فباره ها چهل دختر زیبا می رخصیدن. معلوم شد که خداوند اونها رو در روز و ساعت سعد و مبارک ایجاد کرده بود. نمی تشخیص داد که کدومی که از اونها از دیگری قشنگتره، ولی بلی واقعا که از اونها از همه قشنگ تر بود. اونقدر زیبا بود که به خورشید صبح می گفت تو نتاب که من میتابم و به ماه شب چهارده می گفت تو در نیا که من در اومدم. بختیار به اون نگاه کرد و با زحمت چشمهای خودش رو به هم گذاشت اما طاقت نیا برد. دوباره به اون نگاه کرد و دیگه نتونست از اون چشم برداره. همه چیز رو در زندگی فراموش کرد. گل رو فراموش کرد. پادشاه رو فراموش کرد. از کجا و برای چه مقصدی اومده بود؟ همه رو فراموش کرد. اون رو در باغ ارم تنها بگذاریم و قدری راجب زرنگار خانم صحبت